و لعت و دائمت و علا اللهم فرمه ها چمیان مشتقدین و همین آبه رحمتی که آبه رحمتی از شد که دست مجمعون قیم رو خلاف القاعده مقدم داشتیم در مطلب و مقیم و چون محور بحث ها قالبا محاضرات مرحوم استاده ارز کردیم که ایشان راجب به بحث مجمل مبین در چهار نقطه هم هم. بحث کردن بحث ایشون در تفسیر مجمل و و خلاصش اینه که مجمل و و همون معنای لغری هستند. اصطلاح خاص و اصولی نداره اجمال یعنی اون پیچیدگی یعنی اون ابهام مبین هم وضوح و آشکاری خود کلمه مبین از بیانه که بانه در واعت عرب به معنی جداییه سراح جدایی رو بانه نگه انفصاد توضیحاتی ثابتا از که معانی معهول چطوری از معانی محسوس عکس شدن مثلا قرط معنی بریدن چون انسان در جایی که ایک مطلب واضح نیست نمیتونه بین حق و باصل رو جدا رو کنن. وقتی که حق و باصل جدا شد اون رفت اصطلاحاً قرد میگه قرد میگه لازی بیان به معنای جدایی این قصیل به محبوب بانت سوال سقل به این اومت مطبود این بینونه یعنی جدایی جدا شدن سراف دور شدن بینونه به این معنا که ما بین حق و باطل جدایی میشه تا انسان تشریف حق رو بده به این جهر بود بیان رو میگه محبون در نقطه اول که مجمل و مقیم به معنای همون لغت معنای اوفیس درست هم هست اطولی ممکن است بعضی خصوصیات رو بعضی ارازه کرده شما به طور کلی و همون معنای دوقت بیشه بس هم اقسام مجمل رو خب یا مجمل امیدارم اردیست یا ذاتیست یا حقیقیست یا حکمیست اقسامی برای مجمل ذکر کردن که خب تباید درست درسته این اقسامی که ایشون لکن به طور طبیعی اجمال در کلامی که محل کلام ماست در کلام تاراسم به لحاظ مفرداتشه که خود لحظ مفرد ابحام داره گاهی اوقات به لحاظ حیعت ترکیبیست و در جایی که به لحاظ گاهی به خاطر مثلا اینکه خود لحظ مشکلی داره مثل مشتر یا به خاطر اینکه خود معنا ممکن است تطور زمانی یا غیر زمانی پیدا کرده مثل لحظ تام که از کرم شواهد نشون میده در زمان نزول قرآن تام به معنای غذای خوش بوده مثل گندم. اما در زمان نزول در زمان صدور رویت از احرابه تعام مستق خوراکیه. شامل آبگوشتر میشه اما در اصطلاق قدیم تعام شامل غذای تر حتی شامل مثل روتب نمیشه تم رو تام میگوستن که خوش بوده یا انگور رو تعام نمیگوستن زبید رو میگوستن این اصطلاحی زبان عوض شده این عوض شده اصطلاح گالی موجب اجمال میشه به لحاظ حیعت هم دیگه خوب چون انواع معانی متعدد رو در زبان عربی با حیعات افاده میکنه یعنی حیعات هم مثل مواد در لغت عربی وضع دارن چون که لفظه آب به معنی خواست معینیست حیعت فاقل مفعول این حیعات اشتراقیه افرادی حیات اشتراکی ترکیبی مثل جمله یا توصیف که به اصطلاح خودشون ترکیب ناقص و ترکیب تام ترکیب ناقص مثل مضاف و مضاف الیه یا و و ترکیب تام هم مثل جمله تمام اینها چون در لغت عرب معنا دارن و در معانی بعضی اختلاف شده این یکی ای از اسباب اجمال در کلام عربی مثلا جمله اسمی آورده با جمله فعلی آورده یک چیزی رو به سیقه یه حدثی نهار کردن مثلا الاخامه یا الاخوامون یا به سیقه یه اینها طبعا در لغت حرب موجود نوع اجمال و ابهام میشه و همچنین این تقریم ما حفظ تخیر که مفید هست آیا هست و هست یا نه این موارد زیاده دیگه یکی دوستا مورد نیست به عوامل متعددی به لحاظ اجمال در کلام وجود داره یکی از عواملشم گویا قرائن خاصی است که بین متکلم و مخاطب بوده در مجلس تخاطب به ما نرسیده یکی از قرائنی که واگذاری موجب إجمال میشه اون جنب فکری و خصوصیات جنب فکری است علاین عوامل إجمال انصافا متعدده یکیشون اقسام برمی‌دند بعد میشه اقسام دیگه میشه تصور کرد مهم این است که کلام یک نوع پیچیدگی و ابهام پیدا میکنه مراد از مجملی در مقابل مون بحث سوم رو مرحوم استاد مطرح مرمودن که قبل از ایشون هم مرحوم آیا شمسین دارند دارن و اون خلاصش آیا فرق بین مجمل و یعنی این تفاوتشون حقیقی است؟ یعنی واقعا یک کلام فی نفسی مجمله یا نسی و اضافی هستند ممکن است یک کلام مثل به مجمل باشه مثل به یکی مبین باشه صاحب که پای گفته اضافی و نسبی سلبت مرحوم آیا شامسه نسانی یه اشکال به ایشان رو مبنا کردن اون که با مبنای خود ایشان در کلان مطلبی گفتن نمی سازه لیکن بیشتر اشکال رو مطلب کرده نه رو مبنا که اصلا این مطلب درست نیست و اجمال و بیان از امور واقعی هستند. این واقعا یک کلام مجمنه واقعا یک کلام مبینه اینطور نیست که کلام که مجمل باشه. اصلاح به شخص دیگری مبین باشه این بحث رو بعد من مطرح میکنم این بحث رو باشه بحث چهارمی رو که مرموم استاد در اینجا مطرح کرده نازرن به اده از کتب اصولی چه سنی چه شیعه که متعارفشون شده در بحث مجموعه مبین اده ای از مصادیق رو نهاروشی کنن این هست کتب وحث سنت هم فرابانه و مثالهایی زده میشه مثل روح احنامتی القطر آیا مراد جمعی آثار یا خصوص معاخضه است اونی که ازمار میشه آیا جمعی آثار؟ حرمت هنما حرم علیکم میته آیا مراد عکل میته است یا جمعی انتفاعات میته حرمه استلاح بردن در اصول تحریم اگر مضاف شد به اعیان تحریم به ایکی از اعیان خود آیا مراد از هر آثاره یا مجموعی آثار معروف یا کل آثار متصورش معروف های چه چه نداشت این مثال, مثال حدیث رفت در اینجا آوردن آثار و آثار ها و عیدی هم ها چون لذیت تا محسل هم تا, تا،, تا این بند دست هم گفته میشه تا آرنج هم گفته میشه تا خود منکب یا تا خود اون شانه هم دست گفته میشه آیا مراجمی نقداره چون ادهی از اهل سنت مواطعاً تا مینکر کل درست باریده بشه ماها که خب مثلا بعضها فرطا قدیده که انگوش لیکن ادهی زیادی گفتن از خصوص بند در این شما مشروع باشه چند مورد مثال هم در کتب اصولی به عنوان انسله برای مجموعه ویم گفته شده من همون این میگه اتفاق کردن که اینها خب مواردش مختلفه با شوائل ایشون وارد بحث نشدن مثلا اون مثال ها رو ایشون متعرض نشودن وارد بحث نشدن فرضاً اینا واسه موضعی حساب بکنه یا همون اصطلاحی که من دائما خدمتتون عرض کرده اینا مسائل اصول نیستن مسائل فقهی هم هر کدوم در موضوع خودش باید حساب بشه من عرض کردم هر مسئله ای رو که در فقه موردی مطرح بکنید مسائل فقهی هر مسئلهی رو که در فیخ و بردین و و جریان داره میشه مسئله اصولی آن که که این است و همون مورد خودش مراجعه می کنیم مثلا در باب حد سرگت در اونجا مراجعه می کنیم به عدله که آیا چه مقداره دست باید برشه توی مسئله میته فرسون به نجاسات یا به عقیم و عشبه مراجعه می که چه مقداره از میته حرامه اینها دیگه موردی این رو ما در اصول نیازی نداره این چهار مطلب که رو عرض کردم آن اگه مالب باشن میشونن کتاب محاضرات رو عنوان بزن تیکس بزن راحتر بشه چهار مطلب که در کتاب ایشان هم بزن بحث من و منوییم در کتاب وحث سنت من از تاریفی شدیم جزو خود ارخواس و اصول قرار داده شده یعنی جزء اصحاب ارخواس خاشیهی نیست جزو ارخواس اصول اصوله در کتابه بعدی اصحاب ما مثل حتی معالم اگر ذهن موارد کن باشه حتی معالم مثال هم داره بحث سغربی هم داره به تبع اهل سنت این بحث مجمعان و بین رو آوردن با همون امثلی هم بعد ها در میان اصحاب ما انایت به این بحث کم شد بس این در چفایه هست مرحوم آزی ها مرحوم, مرحوم آی نایینی در تقیدات نه این تو بحث, بحث فرمودن تیه تقیدات آقای بوجهوی هم وجود نداره مرموم آقای خوی هم به همین صورت مجمن که از کردم آردن در تقیداتشون چاپ شده و مرموم آزیا حدود یک سفر کمتر در کتاب مقالاتشون بحث مجمن رو بیان آردن و عجیب اینه تحبیر یک از تنها کسی که زارم که بحث مجمن و بیان یعنی از بحث مباحث الفات خارج کرده مرموم آزیاست عنوان خاتمه بحث مباحث زهورات چون جلده اول بیشه در زهورات و تشکیط زهوراته ایشون در خاتمه قرار ده هم مثلا فیلمه و این حنایت داشته من مواضی یا بخلا میشان جاری شده در بقیه یک کتاب جزه عباس و اصوله اما ایشون خاتمه قرار دهدن ده. شاد نظر شون بوده که این ای بحث مستقلی نیست مثلا ما بحث عام کردیم وقتی اون مبایث آم تحریف بشه خب بحث اون بیان هم میشه این معلوم کجا بیان داره کجا نداره بحث مطلق و مقاید داریم بحث ظهور سیغه داریم ظهور نوایی داریم بحث مفهوم و منطوق داریم با این بحث ها که کرده اینا همه مصادیق مبین رو تشکیط میدارن و هر جا هم که روشن نباشن میشه مجمل پس ما دیگه نیازی به بحث مستقلی به نام نداریم. اگر هم این بحث شده جنبه هاشیهی داره جنبه خاتمه بحث این کاری بوده که تا اینجا علمای متاخر ما پس علمای متقدم ما یه مقداری زیادی متأثر و اهل سنت بودن و کلمات اونها رو آوردن اما علمای متاخر ما نه مثلا آرکولی حدود دو صرف راجر به مجمنون و یه و همین تحبیلی که کردیم صحبت کنه چون یه بحثش مونده نقطه سوم من یه مقدار راجع به تاریخ مسئله صحبت کنم بعد برگردیم اون نقطه سوم رو توضیح بدیم و انشاءالله اینوز بحث مجموعه رو بینه تمام شد از کنم من برای اجمال مطلب در کتاب یک کتاب کنم همه کلمات آمارم بکنم شما خطمشون من بید و خیلی هم فایده معلوم نیست داشته باشه من از یک کتاب آمدی فعلا، اله احکام اصول احکام مال علی اسمش فلان آمدی علی اسمش می سکاره ارد کنم که بله عبدالحسن علی گفت نصدش رو زمان علی ابن عبدالحسن آمدی آمد در شهرهای بوده که در اصطلاح قدیم در جغرافی قدیم جزیره بهش گفتن از بالای بغداد از تکری که الان هم هست اینجا رو جدیره می تا نزدیک شام این اراغ و شام جزیره بود الان یه شمال اراغ آمدی که از شهرهای شمال اراغی که الان تو زهن که از این وقتی وجود خارجی نده الان یهانه آمد و شهر زور و اده از شهرهایی که و اینها به حساب کل هستن این, این هم جزوی انصافن مرد ملای از آمدی انصافن ایشان در این چاپی که من دارم چاپ های دیگه هم این کتاب که و درست، می الان ذ میم چیزی. دیده الان تو ذ در این ج... چاپی که حتی این جدیدم چند تا چاپ توی اینجا بی الان من میگم در این چاپ در جلد سه صفحه سا 9 به بعد این منال بیا دارم صفحه جلد دوش نگاه کنم چون اسناف کرده. سنف سابس در مطلق و مقایده بنوزن سنف خامسش در آم و خاصه در ظهورات سنف سابع فی المجمر ایشون آمده سنف هفته همه بحث هم قرار ندن در بحث مجمر ایشون دیگه دقیقه قسم کنی رو جدا کرده یه بحثایی راجع به خود مجمر از صفحه نه که ارز کردن یشون رو آورده بعد از که بالا میخونم مسئله هم اجمالا میخونم بعد از هشتا مسئله از سنف سامن فی البيان و مبین حالا علمان ما بیان و مجمع و مبین یک جا کردن ایشون دو جا کرده چون یه دعب هاست رو هم بله با عنوان بیان آورده که الان میخونم لعقل خناوین مسئله شمیخونم بعد انشاءالله سعاله توضیحاتی دیگه خدا آمین مراجعه کنه کتاب اهل سنت این همه صنفه به اصطلاح به ایشون سامن ایشون که در بیان و مبین به اصطلاح ایشون اوگردن دیگه بقیه برکدون یک جورندی من یکیشی میخواهم که بقیهتون بقیهش خدا آمین مراجعه کنه اگه اهل مراجعه هستن به حالی دارن و در صنفه به اصطلاح هشتون نهون فظاهر و تعویل غیر از مجموعه یه بحث هم در ظهور و تعویل نه بحث بیان مثلا مطلبی تعویل بشه این هم سنفل نمو پس مجموعه ابحاثی که ایشان داره در این مسئله در حقیقت در سه ایشون بحث کرده سه فصل قرار داده علمه های ما مشروعشون یک فصل طبعا لحظه سنه برمو آزیان که گفتیم خاتمه قرار داده مثلا بحث و مستقلی قرارش نداره. البته من الان نمیدونم آزیان نظر داشته یا همینجوری به قلمه جرال داره. الان چون شاگرشون که نبودیم نمیدونم حالایشون نصیه خاصی داشته که این رو خاتمه قرار داده اما روشن شد که در کتابهای مثل همین آمدی و در مواهد احل سنه در حقیقت این رو سه برست قرار دادن یکی مجمله و یکی هم به اصطلاح بیان و مبگن و یکی هم به اصطلاح مسئله ظاهر و ترین در بحث مجملش برگردیم لفت کنیم میتونیم همشه بخونیم تا از برای اشاره ایشون باقول قول خودشان این بحث مجمن یه مقدمه ای داره مقدمه اصطلاح اصطلاحا مبادی تصوری هم یه مقدمه اینجا مبادی تصوری است و تا مسئله داره یعنی بحث مجمن رو ایشون در هشت مسئله مطرح کرد بله مقدمه رو در معنای مجمل قرار داده که از کلمه آقای کویی هم نقطه اول رو ایشون می کلمه جمل در لغت اصلشون معنای جمع کردنه او فر لغمه خودم من الجام و منو قال اجمل الحساب اگر جمع او مثلا اگر ایریا شما چقدر از من طلب داری میگه پنج هم چندی خریدی چهار شما نان خریدی دو شما میگه خلاصش جمع بکنه بعدیه اجمل الحساب یعنی تمام این ریزه کاری ها که او بیشش کلنه سنت اصلش از این جامه وطیل حقال محصل و من هیغات عمل توشه اضا حصل رو ها کلار ذکر رو صاحبل مجمع مجممل و مقایفل لغت پس یکی معنای لغه بعد هم معنای اصطلاحی و شو کرد یک تثیر برای مجممل کرده این نمی خوم هم شول میکشه بعد درش منابشه کرده مثل یه تفسیر اینه علت والدی لایفت همومن و انند اصللاق شه. پس تفسیر دیگری اگر ویلا یا فهمان هشیو آن اند اطلاقی منجر به ما هو به مشمله اینم اضافه کرد بعد آن را توضیح دیگر داده است. همچون خصاین بصری که از علمای معتقد است و متکلمه و در موارد اصولی موارد کلامی را اضافه کرده دو تعریف دیگه کرده. اول اول آنها لذی لا یمکن معرفتال مراد من اصلا نمیشه بیشتر جمعه های عقلانی به نظرم گرفتی تفسیر دوبه می کرده المجمل هو ما افادشه من جمله تاشیه هو متعینون لفظه و لفظ لا یعینو به نظرم لا یعینو به اینه نوشته و لفظ لا بعدی شرحی به تفسیر عبال حسین و اشکالات بر عبال حسین بسری خود ایشان گفته بر حق فیزاده کردن یغال هو ماله و دلالت آن علا احد امرین لامزیت لا احد آخر به نسبت الی حالا مزیت نباشه اما مزیت به حد ظهور نرسه کافیه اونم مجور میشه الله بعد ایشان تفسیر خودش رو توضیح داد آن مرجع فندقی به نظر ما حق باستاده این معنی و عرفی داره احتیاج به این تعریفانه داره. بعد و قد یکون رو که فی لحظ مفرد مشترک این اقسام مشمله که از سری ما های آورده بوده اقسام رو ایشون آورده قد یکون در لحظ مفرد لحظ مرکن به سبب تردد یا عبد زمیر به سبب تردد لحظ بین جمع اجزا و قد یکون به سبب وقت و الابتدا و قد یکون رو از مجمد نهاره کرده من هم اشاره آوره کردم انصافا زبط مواردش خیلی مشکله چون خیلی مواردش فراوانه، بسیار بسیار مشکله بعد ایشون قرار مثل آرکوی وارد نشنید جور دیگه تقسیم کرده و اقسام مجمد و من هم کردم انصافا اقسام و در دارد این اخسام هم خیلی مشکله اینطوری نیست که آسان باشه این هم بحث دوم ایشان بحث سوم ایشان که به عنوان مسائل هشتمساله، این هشت مسئله مصادیق رو گفتن. این در واقع بحث 4 رو ما بود. پس همون بحثایی رو که فرض در سال 1600 خردی به نظر رفضه 700 600 خردی می اومده داشت ما بعدش اینا همون همون سال قرار رو دیدن. طرازی اینی که ایشان به اصطلاح همون راه ها رو رفته اما بیان مصادیق کرده که از از کتب معاله حالا من برای اینکه در ذهن شما هم مطلب روشن بشه و هم این که چرا اصحاب ما زید نکرد، اصحاب متأخر یه لیستی از این مسائل میگم که اینا حساب معالهم هست فرض کنیم امروز بحثه معاله مثلا مسئله اولات در تحریم و تحلیل مزافن ال ال احیان حرم علیکم المیت تحرم حرمت علیکم امهاتكم من و اخواتو کن بناتو این رو بله این رو اختلاف کردن که آیا جزو مجمله یا نه ایشون نقل کرده از اصحابونا یعنی شعافه و جماع من معتذله که قاضی عبدالجبار و جبایی و عبی حاشم و عبدالحسین بسری نقل کرده که در اینها اجمال نیست اما از ابو عبدالله بسری و کرخی و عده هر تره که درش اجمال هم و بحثی در اینجا کرده که من دیگه نمیخوام وارد بشم ما در بحث مکاسب اونا سر تحوا ما علیکم به ذهن ما اصلا مسئله بالاتر از این مقداریه که اینا گفتن اینا در بحث اصولیشون آوردن در اینجا اما بالاتر از اینه و اونجا ما توضیح دادیم اون, توضیح دادیم. اون توضیح چون دیگه یک مقدار تازگی داشت ایشون هم کلا در اقوالی که نقل کرده و نیاورده ما توضیحات خود رو نجا اجمالا از میکنیم توضیحشون رو بود از که تحریمی که به انیان بخوره مثل نیته این یک احتمال خب همینی که ایشون گفته که ظاهر باشه در عقل در اون فعل ظاهر که عقل باشه با که چیزی که از مجموعه شوارد میشه در سقو این از که غیر از مسئله عقل و فقط تحریم نیست یعنی این بحثی که اینا مطرح کردیم، یه بحث عقیمیه به نظر ما. بحث رو تحریم مساله تکلیفیه دیگه حکم تکلیفیه اون چه که میشه در اینجا قائل شد که لزا هم آقایان در فقه دارن و در اصول کافی نبوده اگر بخوان بحث اصولییش بپرم اینه من دیگه بحث ایشون نمیخوام ما از این که تحریم دو بحث داریم یه بحث تحریم در قانون اصولا تحریم چون محرومیت دیگه تحریم یعنی محروم کردن شخص ما یه بحث داریم بحث قانونی مطلق قوانین باشن بگیم هر جا در رعای اعتبار قانونی تحریم آمد ممنوعیت آمد این فقط حکم تکلیفی نیست احکام دیگه هم به دنبال داره این ممنوعیت لازم نیست از حکم تکلیفی باشه که فقط غرمت در بیان چون غرمت حکم تکلیفیست حقیقت شکل و زجره این تحریم رو بگیم و ما این بحث مفصل از کردیم اینام نداشتم به این تفسیر که اصولا مفاد سیغه نم فقط زجر و از کردیم برای مسائل اعتباری اگر بخواد حقیقتش خوشندتر بشه اون رو به معانی معبوله و معانی موجود محسوسه اون رو تشبیح بکنیم اینا میگن لا تخراجونالغرفه مثل اینی که دست کسی رو بگیره همین دستش گرفته از اتاق بگیره این لا تخراج معنیش اینه و لذا من ریشه یه بندس رو اوشنگ که شما بوش فکر بکنید این لا تخرجونال غرفه این معنیش چیه؟ لا تخرج این چون در اراده تشریعی است دیگه اراده تشریعی اصلش و ریشش به اراده تکیمی برمیگرده فقط در اراده تشریعی سبعدیه سزرعیه مورید و مراد و مرادون من در اراده تکیمی مورید و مراده من دست می عینک بالا می این مورید و مراده اما در اراده تشریعی یک مراد من هم هست به طرف میگید اینکه بالا برد از خونه ده. درست شد بحث اینه که اگر بخوایم این اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم به اراده تقریمی یک عده میگن لا تخرجونال غرفه فقط زجره یعنی دستشی گرفته از ساق نروی بیرون آیا لا تخرجونال غرفه فقط زجره دستش گرفته از ساق نروی بیرون یا نه مثلاً داخل خروجن الغرفه معنی‌ش که در رو بسته. و این هیچ جایی نمیتونه داره یعنی به هیچی که ورود اون رو مثلا به اتاق دیگه به کارهای دیگه اونا رو ممنوع کرده. خب، نظرش به اینه که اصلا از این در اون اونور نره. به حسی که مثلا اون اون ولی حساب فرضاً این که لا تخلیش میالکورفر نظرش این این اتاق نرو توی اتاق نهارکوری سفره هست توش غذا هست لا تخلیش میالکورفر معنیش اینه که غذا نخور این فقط زجر از خروج یا نه فقط زجر از خروج نیست این میاد مجموعی عوامل در نظر میگیره خوب دقیق بکنیم این یه بحثی است که در ظهورات قانونی خیلی مؤخر به این تحلیلی که من عرض می کنم کسی متعرض نشده این لا تخرزن القرفه شما چه جور تحلیل می‌کنه مثلا گفته لا تبع مالیت اندر یا مثلا گفته لا تبع مثلا به اینکه که ی این لا تبع یعنی فقط دهن اون بسته که فی نگه بعثو اشارתו دست و پای اون بسته یا لا تبع کاری کرده که اصلا اگر به تو اشتری تو هیچه اثر نداره ارزش نداره لذا این بحث رو باید به این صورت من این نیست که برد ایشون گفته که آیا تحریم اجمال داره یا نه بحث در این است که آیا ما فقط یک حکم تکلیفی صرف که زجر باشه استفاده میکنیم یا اصولا یک تفسیر قانونی هر جا در قانون من یه از عملی از کاری آمد من از این خارجی آمد اون گفت میز این شما از این میز محرومی این محرومیت شما از میز این میز که فقط مثلا بشین رو میز مطالعه با این محرومیت فقط زد و از مطالعه نیست. این محرومیت چیزهای دیگه هم داره یکی از این محرومیت های که شما خیز فروش نمی کنه. اگه خیز فروش این میل که تو نمی شه خود بکنید روش مثلا نماز نکنیم دیگه از محرومیت اینه یعنی که فقط روش فقط مطالعه نیست ولو اثر ظاهر و بارز می مطالعه بلکه هر جا محرومیت توی که اعتبارات قانونی آمد تمام ل... موارد رو میگیره حتی احکام عادی هم تکلیفی رو هم میگیره وضعی رو هم میگیره وضعیت های متعدد رو هم میگیره مثلا حرم علی کوم میگه این بحثی که آیا فقط تحریم عقل یا تحریم نظر هم هست یا تحریم خیز و فروش هم هست نه این حرم علی خوب دقت بکنید محرومیت شما از میته است مطلقا عقلش هست, هست، خیز و فروشش هست فرض این لباس مثلا روش نماز بخونین هست توی جیبتون باشه وقت نماز هست پارچه ازش برات بکنید هست نجاست هست مثلا هر وقت علیه قول میگه توش هست که نجسه این نیست وجیبیه نیست این یک تصویر خوب دقت بکنید یک تصویر این است که اگر تحریم خورد به یک عین خارجی این تمام اون احکام مانه رسالت اون از همون در میاد و لذا اگر شما مثلا بگید که آه مثلا چون علمان ما هم گفتن دا حرامل کنید اجمال نداره یعنی میت اک خب اگر اک وقت شما از کجا دارید که میت مانعه نمازه شما میگید ما به تعبد از روایت احل بید داریم ما به تعبد از روایت احل بید این تفسیر که آمد روایت احل بید تو دیگه تعبد نمیگیده تفسیر قانونی بیکیده بردوشن شد چون اگر شما روایت احل دیسه او اون چی میگه؟ اون میگه این روایت رو ببینیم کی از صحابه نهارتره در کسام غیر از جبر محمد کی این روایت از رسولون که لاتو صلیف ال میتر میتر دستش میتر میتر اگه. اگه اگه اتو میشون لاتو صلیف میتر رو ما که این بحثش تابقا هم چند بار ارسه روشن شد دو برخورده یک ولی زا آیان ما میگن ولی راست این دواست سنیه شما نقل نکردیم ما از انیمه داریم, از انیمه داریم. از انیمه ما مثلا از کتاب علی بوده علمی بوده که ما نرسیده دیگران نرسیده این دیگه همون بحث معروف آیه کتمان علم جای هست چطور شد کتمان علم شده هستن از سبای جاته کتمان علم دادن اما این که شما گفتیم این مطلب رو روشن کرد اون مانعیت نماز هم از هر عمل میت مانعیات در نماز هست چرا؟ چون میگه شما از میت محرومی نجاست میت از حرم میت دارن خصوص بیعش و اونا چون روایت دارن ان الله حرم بیع المیت غیر از مساله بیعش فقط مانعیت نجاست ما بیم بگی بحثی که ایشون مطرح کرده که آیا مطلق تحریم وقت تحریم نیست وقتی تحریم و اعیان خود تمام آثاری که در جهات مختلف داره بار میشه مثلا میته میلک شما نمیشه مثلا شما برداشین یک میته رو بردیم تو خونه ما رو داریم منصب من رو داریم سندشکانانه واقعه نم منصب غیلام منالمی از جراله یه احدان در مسلمین فاقوه احقوبه نیستیم تو فاقوه احقوبه؟ بگیم من میته رو بردن حق اختصاص دارم ملک نمیشه این حرم علیه کنم یه حق اختصاص هم تولید نمیشه <تصفيق> باشه پس یک بحث این است که اصولا در وعا من الان نمیخوام بگم سابسه این بحث بکنم که آیا در وعا سبات قانونی وقتی تحریم بیشه از اعیان خود این جمعی آثار نه آثار یعنی آثار این تحریم های متعدد نه تحریم و حفظ وضعی و مانعیت و نجاست و احکام متعددی کرد تمام اونها رو یعنی به عبارت اون اخرا تو به اعتبار رابطه بین شما و این رو قفل میکنه این قفل رابطه و این محرومیت در وقت سهارت میشه نجاست در وقت سلاف میشه مانعیت در وقت بید میشه بطلان در وقت عطی میشه خوردن در وقت هر جاییش عنوان ظهور پیدا میکنه این یه یک تر. یه ترهیدیش این شاید بشه منحیص مجموعه از روای ما شاید بشه استفاده کرد. اون اینکه نه اینطور نیست که ما بیان بگیم هر جا تحریم قانونی هست اون تحریم قانونی به معنای نفی جمیع این خصوصیاته نه چون در ما صادقا هم صحبت کردیم مصطفاد از مجموعه از آیات و شواهد روایی ما اصولا در اسلام دو سه می دو سه قانون هست. یکی فرائض الله یکی ماجاعف کتاب که اصطلاحا زمان ما میگیم قانون اساسی، یکی نه اونها که در سنن پیغنبر بر بیان شده باییم قانون مدنی قانون کیفری یعنی, یعنی به اصطلاح دو جور قانون داریم دستی یک و دست دو دستی یک ماجاعف القرآنه دست دو اونها که در سنن آمده ما این بحث رو در مطلبه حرام نگیم در خصوص فرائض بیان. یعنی اگر قیقنبر میتوند حرمه علیکمون میتونی خورده نمیته <تصفيق> اما ایا خدا فرمود حرم علیکمون میتونی جمیه آسا توش نجاست هست مانعیت هست بسلان بیه هست حرمت بیه هست حرمت اکت هست هر... نقی حق اختصاص هست نقی میکیت هست یعنی میتونی که شما نمیشه بلکه میتون حق اقتصاد هم برسون نمیشه نفسی شبون چهار مورد مردت خیام اونده خودم اونده تو خونه میگید آه من حق اقتصاص دارم کسی بخواد بیاد بگیره باید پول بده از من مثلا بگیره میگن نه حرومه علیکون بیتر معناه چی نهید که حق اقتصاص شما نداری روشن شد پس بحث و انصافه این بحث بحث لطیفی خوب تو مجملان و یه مطرح میشد به این سیغه ای که من تحبیل تحبیل که من داده هم پس یک بحث این است که حرم علیکم و یک نوع حکم تکلیفی واحده که به لحاظ موارد به و استقاضات و ارتکشون نیتره میخوردن یعنی شما در میترستان نخورید. یه بحث این است که جمعی آثاره یه بحث این است که چند تا اثر ظاهر یعنی خوردن و خرید و فروش و این جور چیزا اما نجاست و منع حق اختصاص دیگه نه اونا دیگه اونا خیلی بریده یه قول دیگر هم هست که ما تفصیل قاعد بشیم که از که انصافا با در نظر گرفتن مجموعه شواهد و شواهد اقلائی هست تفصیل که بین ما جائف کتاب ما جائف سنت حرف خوبیه بگیم اونه که در کتاب آمده یه جور استفاده میشه اونه که در سنن آمده جوری دیگه استفاده میشه نه بله، از هرمه هر هر و لیزا و لذا یک هم داریم محمد مسلم نبی در عهد هست آنگه خواستن جلد 16 یا 3 وسائل چاپ قدیم امام این حرام ما لافی کتابه و این نماخان سلط یا آفون بعدشون می آمد نحنم نعافا نعافا ها حرمت و لذا از کردیم مثلا در قرن اواخر قرن اول دوم که دیگه کارهاشون مرتب شد اصلا های اهل سنت این طوره واسه ما هم آمده این سرقشینه اینا حتی برای احترام جایی که مثلا میخواستم بگم مثلا شراب انگوری حرامه حسن شراب انگوری حرامه اما پس شرابی که از برنجی این چون به سنت رسول الله میگفتن یکره خمره از غیر اند یکره یه رو وکه به سنت من عبارات یک مناسبی وقتی ارز کردن در کتاب عم در حاشیش آمده میگه اصلا فوقها بناشون ببینه که لفظه حرام رو در اونجایی به کار برن که در کتابه اما اگر هرمتش به کتاب ثابت نشد لفظه حرام رو به کار ببیبرن لفظه یکره رو اینم حتی زیاد شنید که در روایت ما یکره هست فوقها میگن هم در حرمت میشه کراهت در روایت این نقطه تحریدش است که الان ازگردن یه تعبیر فقه بود همین بحث بعدی ما در مقاسب لباس شهرت تصادفت محبوب مجلز برون شیخ کلیلی در کافی باب کراهیت شهره کراهیت مراد حرمته کراهیت در اصطلاح اونها است که به کتاب ثابت نیست یعنی آمدن ما بین این دوتا هر گذاشتن. هم به لحاظ آثار که الان بررسی کردیم روشن شد به لحاظ آثار قانونی بالاتر به لحاظ تحریری هم تحرید شد اگر ها خوب کار خوبه همه هست انصافا هم کار خوبی همه و این مخواد تأکیل بر دو نقش قرآن در تقریم که اصلا نقش قرآن الان ما به باعث قرآنمون در قانون گذاریم می و به باعث روایت گرفتیم نه خب باید این فرض بگذاریم مباحث تقلیمی قرآن مثل مواهز تقلیم روایات نیست مثل مواهز تقلیمی سنت نیست پس هم به لحاظ قانونی فرق میکنه بین سنت و قرآن هم به لحاظ تعبیری قانونی هم هم تفسیر قانونی و هم آثار قانونی بقیه شنش را فردان بخواییم بقیه بحث و بحثی سه و ماهی خوری بعد متعبز میشه